اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و السلام و سلام علی نبینا و آله تاهری خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم و روز به خیر میگویم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت کامل جسمی و روحی برخوردار باشید و در پناه خداوند موفق و معید اما مقدمه بحث ما تمام شد و وارد اصل موضوع شدیم که علم بیان رو شروع کنیم و گفتیم که علم بیان رو با تشبیه و انواع و اقسام و اقراز اون شروع میکنیم بعد مجاز و بعد کنایه الله این اینترم تمام و خواهشم کردیم که حتما مباحث رو پیگیری کنید و یاد داشتای خودتون رو جمع جور کنید درس رو یاد بگیرید چون هر درسی درس بعد که بیاید این درس قبلی و دروس اون پایه و اساس اونه قیبت کردن به روز نبودن تو این درس منجر به این میشه که آدم از درس بعدی استفاده مناسب رو نبره و جمع شدنش هم در آخر ترم با توجه به اینکه این درس فهمیدنی و نه حفظ کردنی یه مقدار سخت میشه ولی اگر هماهنگ باشید با توجه به تکراری که در این درس هست که هر مطلبی پنج شیش بار تکرار میشه دیگه هیچ کسی از کلاس جا نخواهد عرض کردیم که تشبیه چهار تا رکن داره مشبه مشبهه به ادات تشبیه و وجه شبه گفتیم مشبه و مشبهه به میتونه مفرد باشه میتونه متعدد باشه گفتیم, گفتیم که ادات تشبیه هم میتونه حرف باشه مثل کاف و کانه میتونه اسم باشه مثل مست شب مماسل و میتونه فیل باشه مثل یوشبهور، یزاری یو یهاکی زاهی یو هم بچه شبه که وصف مشترک بین مشبه و مشبه هم بهه اون چیزی که ما مشبه نسبت به اون صفت به مشبه هم به تشبیه کردیم این وصف مشترک میتونه تشبیه در یک وچه شبه باشه میتونه دوتا باشه میتونه تا باشه پس وچه شبه هم میتونه متعدد باشه یعنی مثلا وقتی که یه میگه المؤمن هم میراعا طول مؤمن مثل آینه برای مؤمن دیگر هست خب آینه چیکار کار میکنه هم خوبه نشون میده هم بد یه بچه آینه چیکار میکنه؟ آینه بهت نشون میده دیگه داد نمیزنی یه بچه آینه چیکار میکنه؟ آینه به خودت نشون میده تو از جلوش رفتی دیگه نیست و همه وحش های متعدد هست در اینکه آمده مؤمن رو تشبیه به آینه کرد. پس بچه شبه هم میتونه متعدد باشه. خب، پس بنابراین ما این مقدار رو در سابق گفته بودیم. پس درس نخوندید ولی گفتیم که مشبه داریم، مشبه هم به داریم، میتونه متعدد با باشه. ادات تشبیه داریم، میتونه حرف باشه، میتونه اسم باشه، میتونه فعل باشه. وچه شبه داریم که وصف مشترکه، میتونه متعدد با باشه. خب اینا رو گفتیم بهش میگن ارکان تشبیه. بهش چی میگن؟ ارکان تشبیه. حالا شما حالا شما قواعد درس تشبیه را بیارید؟ چی رو نگفتی؟ به میگید نگفتی، نگفتی، این مختار کلمه ای که الان گفتم مشبه، مشبهان به عدات تشبیه و چشبه، اینا ارکان تشبیه هستن، نه شما رو تکلان چیزی نگفتیم هنوز برای این درسمون میگیم میگیم این تشویرشون میگیم بحث تمام شد دیگه بحث مقدمه حالا شروع کنه درست شد پس من آور این ارکان تشویر حالا وان الان میگی گوش کن ارکان تشویر مشتبه چیزی که تشویرش میکنی مشبهه چیزی که به اون تشویر میکنی عدات تشویر اون وسیله ای که این مشبهه و هم به وچه شبه اون چیزی که ما در مشبه و مشببه هوندی بهتیدیم و این رو به خاطر اون تشبیه کرد. وقتی گفتیم زیدان کل حسد فیل جرعه زید میشه مشبه حسد میشه مشبه اون به کاف میشه عداد تشبیه بی بیباکی میشه وچه شبه گفتیم مشبه و مشبه اون به میتونن مفرد باشن میتونیم بگیم زید مثل شیر است. میتونن متعدد باشه بگیم زید و عمر مثل شیره میتونه یه چیز به دو چیز تشبیح بشه ها؟ بگیم زید در خونه مثل شیره در میدان جنگ مثل روباه مثال مثال. پس بنابراین مشبه و مشبه میتونه متعدد باشه نه تکتار میشه باست توی کتاب ده بار تکتار عدات تشبیح گای اوقات حرف مثل کافو که هنن. گاهی اوقات اسمه مثل این که میگیم زیدان مثل و لحصد فلجان گاهی اوقات فعله مثل این که میگیم زیدان یوشبه ها اصدن فلجان ورچه هم میتونه یکی باشه میتونه تا باشه میتونه تا باشه باید ببینید ورچه چند تاست این کل داستانی بود که دو سه بار تکرار کرده خب نگاه کنید توی قواعد درس قواعد درس میگه القواعد ما این قواهد رو بخونیم تعریف میکنه میگه بیان رو میگه از ادتشبیح بیانو تشبیه بیان کردن اینه این اینکه یه چیز او اشیاه یا چند تا چیز و اگه مشبه میتونه یه دونه میتونه بیشتر اینکه یه چیز یا چند تا چیز شارکت غیرها مشارکت کرده با غیر خودش اون غیر مشبهان به مشارکت کرده با غیر خودش فی صفت در یک صفت یا اکثر فی صفت و چشدر صفت در یه صفت یا بیشتر یه چیز یا چند تا چیز همراهی کرده با غیر خودش هم شکل شده مشارکت کرده با غیر خودش مشبهان به. در یک صفت یا چند تا صفت. امم. در دو چیز تشبیه میکنه. در دو چیز. صفتن او اکثر به این. و این باید بواسطه با یک عادت باشه. یک وسیله باشه. اون وسیله هیان کاف. کاف است زیدان کل است. اون نحوها. یا مانند کاف. مثل که نه. مثل کلمه مثل مثل فیل تو تا اینجاری دیدی پایین ملفوزتن اون ملفوزتن این رو توی ذهن داشته باشید اینا تفسیر بنویسید. در تشبیه مشبه و مشبهان به حتما باید ذکر بشه در تشبیه مشبه یا مشبه به این دوتا این دو دروک حتما باید ذکر باشی ولو در تقدیر ولو در تقدیر یعنی نمیشه مشبه و مشبه هم به نداشته باشیم یکیش نیمده باشیم حتما میاد ولی ممکنه در تقدیر باشه درست ممکنه در تقدیر باشه مثل که بگم زید مثل چی میمونه؟ شما میگید مثل شیر وقتی میگی مثل شیر این مثل شیر مثل لعصد میگید این مشبهان به زید شد تو کلامه اما مشبه این مثل لعصد خبر مبتدار محضوفه یعنی زیدان مثل لعصد پس بنابراین از ارکان تشبیه مشبه و مشبهان به حتما بگید ذکر زید میشه زیدان کل عسده بل جرعه یعنی چهار 4 شده حتما مشبابه و مشبام و به باید باشه حالا گاهی اوقات با قرینه ممکنه یکیش حد شده باشه اونجا در تقدیره میگن علمقدرو کل مذکور. مثل مثل اینکه یه نفر میگه من کل عسد چه کسی مثل اسده درست شد شما میگی زیدون یعنی زیدون کن است پس بنابراین حتما مشبه یا مشبه به ذکر میشه ولو به شکل تقلیر اما اما عدات تشبیه و وچه شبه اینها گاهی در عبارت یکیشون یا هر دوتاشون نیستند گاهی یکیشون یا هر دوتاشون بگید نیستن میتونه نیاد میتونه ادات تشویق یا بگو و چه در عبارت نیاید درست شو آقا جون گوش کن شما من هیچی جلسه گذشته در مورد تشبیه نگفت از الان دارم از الان دارم شروع میکنم هیچی نگفتی. هیچ اصلا الان داری شروع میکنم نخوندم که چیزی هیچ مقدمه تموم شد الان که شنیدی در مورد تشبیه چی گفتم. یه بار دیگه هم استرس چرا داریم اصلا هیچی نگفتی. درست شو. هیچ تشبیه مانند کردن چیزی یا چیزهایی به چیزی یا چیزهایی است به واسطه ادات مخصوصی با یک صفت یا چند صفت همه چیزی که الان گفتم ده تا مثال هم درست شو حالا ادات تشبیه و ورچه شبه ادات تشبیه و ورچه شبره گاهی در عبارت هست گاهی نیست اگر نباشد تقدیر گرفته نمی‌شود اگر نباشد تقدیر گرفته نمی شود ولی در معنا هست یعنی شما وقتی میگی زید شیر است ها الان میگی زید شیر است منظورت اینه که زید حیوانه ذ شیره دم داره شکم کوچیک داره قررش میکنه جوزه قربسانان جنگل زندگی کومازو تو اینه زرد شیر است اگه اینو بفهمی که هر کسی بهش که میوا تو این چی نمیفهمی تو میگی زرد شیر است اون میفهمه یعنی مثل شیر است در چه چیز مثل شیره دهان بدبو داره مثل شیر شکم کوچیک داره درنده است تو این صفات نه میگه میفهمم منظورش اینه که بیوا که مثل شیر جرأت داره پس الان ورج شبع که جرأت بود عدات تشبیه که مثل یا کاف بود هست شده شده زیدان اصدون زیدان مبتدا و اسدون خبر چیزی هم تقدیر بگید نگرفتیم اون جایی که عدات تشبیه هست بهش میگن ملفوزه اون جایی که وچه شبه هست بهش میگن ملفوزه تلفظ شده اون جایی که نیست بهش میگن ملحوزه مد نظر از نظر معنا مد نظری مقدر نیست اما مشبه و مشبهان به اگه در کلام نباشد در بگید تقدیر است در تقدیر است اگر من گفتم زید مثل چیه؟ همه گفتید مثل شیر خب این کلعصد یا مثلولعصد خبر مبتدای محضوبه یعنی هوه یعنی زیدون کلعصد مثلولعصد اونجا مبتدا رو تقدیر میگه پس در تقدیر یعنی انگار هست تو عبارته ولی ما نمیبینیمش باید تقدیر بگیریم اعراب هم داره مبتداست اما در ملحوظ از نظر معنی لحاظ میشه درست شد؟ ولی از نظر لفظی میگیم زیدون مبتدا، اسدون خبر تمام، نه کافی در تقدیره، نه فلجرعهی در تقدیره اما از نظر معنا وقتی میگیم زید شیر است همه فیلم فهمن یعنی مثل شیره همه میفهمن در جرعت و شجاعت مثل شیره نه در چیزای نگاه کنید چی گفت ببینید عب بیانو بیان و انه شیعن این شیعن آشیا چی بود؟ مشبه که میتونه یکی باشه میتونه بیشتر شارکت غیرها همراهی کرده با غیرش مشابهت رسونده با غیرش غیر چیه؟ مشبه هم بین این در یه ورچ شبر یا بیشتر ممکنه یه دونه ورچ باشه مثلا در شجاعت فقط دو تا باشه مثلا هم در شجاعت هم در مثلا دیده خیلی قوی داشتن در شب دوتا تشبه بعد شبه بعد شبه. یه صفت او اکس به عدات با یک عداتی وسیلهی هیل کاف که عبارت است از کاف یا نه به کاف حالا نگاه کنید این صفت و این عدات ملفوظتن گاهی اوقات تو عبارت هستن زیدون کل اصد جرعه هم کاف هست هم بچه که وقت ملحوظتن ملحوظ یعنی چی؟ یعنی از نظر معنا مد نظره ولی از نظر لفظی بگید در تقدیر نیست تو لفظ یا مبتدا داریم یه خبر تمام اما از نظر معنا اون مثل و مانند بودن هست و اون بچه شبه هم مد نظره درست شد؟ خب. نگاه کنید دو ارکان و تشبیح ار ارکان تشبیه چند تا چهارت هیه یک المشبه ها و المشبه یکیش, مشبهه، یکیش مشبه یکیش مشبه هم این دوتا ارکن اصلی هستند دوست شد که بهشون میگن طرف این تشبیش. این دوتا خصوصیتشون اینه که حتما باید باشن و اگر در ظاهر ندیدیم تقدیر میگید یعنی این لابدن این ذکره همار. ولو تقدیرم مشبه ماشه و یا سمیان طرف تشبیه به این دوتا میگن طرف این تشبیه طرف این تشبیه باید باشه نمیشه نباشه اگر یه جایی هم با غلی حذف شده بود در تقدیر و عدات و تشبیه بعد داریم و وجه خوش اون صفتی که بین این دوتا هست وجه خوش حالا دقت کنید یه نکته بگیرید ببینید تشبیه به دو دست تقسیم میشه یکی تشبیه عادی و معمولی که 95 درصد تشبیه‌ها 95 درصد تشبیه‌ها از این بس. یکی هم تشبیه مقلوب با قاف و معکوس درستو مقلوب ما پنج درصد این خود عدم میخونیم در تشبیه عادی و معمولی که نوود و درصد تشبیه هستش وچه شبه لازم است در مشبهون به اقوا یعنی قوی تر. از ازهر یعنی ظاهر در اشهر یعنی مشهورتر معلوم اقواب اشهر از هر اکمل نور الفاظی که به کار می نسبت به مشبع یعنی بچ شبه در مشبع هم دقیق مشهورتر ظاهرتر کاملتر از مشبه خب شما زید رو تشبیه کردید به شیر گفتید زیدون کله اسد جوان شما جرأت تو زید بیشتر بوده یا تو اسد خب تو اسد دیگه که با همیشه ضعیف رو به قدی تشبیه می تو تشبیه عادی و معمولی باشه شبه بگید وچه شبه در بگو مشبه ضعیفتر است از مشبه مثلا شما میگید این آقا مثل سیبوه میمونه در نهر خب این آقا رو گفتید نهر بلده اما سیبویه رو پدر نهر میدونید بالاتر میدونید با استاد اول آخر نهر پیشتون هستش میگید این آقا در نهر دانستن مثل بگید این آقا در فیزیک دانستن مثل انیشتین ها؟ حاضا که انیشتین فی علم الفیزیا همیشه ضعیف رو به قوی در تشبیه عادی و معمولی تشمیه میکنه عادیه عادی یا دیگه خودتون برید تو کجا بازار هم همینطور دیگه ببینید ما گفتیم قویتر باشه خیلی جاها قویتر ظاهرتر باشه مشهور الان مثلا اگر گفتی علی علیه السلام مثل شیر در میدان جنگ حمله کرد خب اینجا علی رو تشبیه کردید به شیر متداول اینه که شیر رو مردم خیلی شجا میدونن مشهوره ظاهره ولی حقیقتا علی در خیبر از جا کند شیر در خیبر به زیر روش میمیره اینجا در واقع ما میگیم که قوی تر باشه، مشهورتر باشه، ظاهرتر باشه، کاملتر باشه. خلاصه ضعیف به قوی تشبیه میشه. در تشبیه عادی او میگید معمول. نگاه کنید ببینید چی میگه. ویجب ان یکون اقوا و ازهر. من دو تا لفظ دیگه هم گفتم میگن و اشهر و اکمل. فالمشبه به عجب یکونه کی وچه شبه اقوا و اظرب و اشهر و, و اکمللا فل المشبه به من ها از اون وچه شود فل مشببه. همیشه در تشبیه ما درست شد یه چیزی که قوی تر است در این سفت اینو تشبیه بگو میکنیم، ضعیف رو به قوی تشویق می‌کنی تا اینم مثل او قوت پیدا کنه، مبالغه درش بشه. می تشبیه میبره بالا دیگه مبالغه می‌کنه. 그렇죠. حالا شما نگید که مثلا فرض بفرمایید که بقول خودمون همیشه مثلا ممکنه بگیم زیت مثل موش می‌مونه در ترسیدن. خب ترسیدن ها ترسو بودن تو موش بالای بالاست زیدو به او تشبیه کرد یعنی اون صفت در اون موصوفی که مشبه هم به شده قویست ظاهر مکشوف مشهوره این مشبه رو بهش تشبیه میکنیم تا این هم وقتی به او تشبیه میشه این هم مانند او بشه. پس ببینید کل درسی که ما گفتیم همین بود یعنی ما به شکلی براتون دو سه بار تکرار پس مشتبه تو مشتبان به اینا رو میگن رکن تشبیه طرفین تشبیه حتما باید باشن اگر نبودن تغییر میگیریم ادات تشبیه داریم و ورج شود اینها ممکنه حذف بشن اگر حذف شدن از نظر معنا هستن ولی از نظر لفظی تغییر نمیگیریم گفتیم مشتبه و مشتبان به میتونه مفرد باشه میتون متعدد باشه ارکان تشبیه همین 4 تا هستن مشبه مشبهه و عدات تشبیه وچ شبه و گفتیم که وچ شبه در مشبه هم به ظاهرتر، مشهورتر، کاملتر، قویتر از مشبه و یه مطلبی رو هم من براتون امروز هم تکرار کردم که عدات تشبیه تو عربی سه سجوره گای اوقات حرف مثل کاف و که اند اوقات اسم مثل کلمه مثل زیدون مثل لعثت فلجوره. گای وقت فیله. مثل زیدون یوش به او عصادان، زیدون یوش به او عصادان چه بگیم زیدون کل عصات فلجوره. چه بگیم که اند اسد عصادون فلجوره. کنند. چه بگیم زیدون مثل لعثت فلجوره. چه بگیم زیدون یوش به او عصادان فلجوره. اعداد حرف، اس، فعل باشد اشکالی ندارید. این رو درست شد؟ خب این مبحث تمام شد. حالا بیاید داخل امثله. الان شما درس رو میگینیم. مثال میخونیم مثالا رو تطبیق میکنیم. تمام میشه این نگاه کنید. قال المعری. آقای عبول علای معری. این شاعر نابینا. فلمدی در مد اینطور گفته انتک الشمس این انتک الشمس فزیاء یعنی درخشش پرتو میگه انت به مخاطبی که داشته مرتش میکنه تو مثل خورشید هستی در نورانیت خب خورشید پیش ما مظهر نورانیت کامل قوی مشهور ظاهره نورانیت درو اینو تشبیه کردن تو مثل خورشید میدرخشی الان انت مشبهه الشمس مشبهون به هست کاف عدات تشبیه لیاه و چشادار همش ذکر شد هر چهار تاش ذکر شد و این جاوزت کیوان فی اولو ال مکان دیو میگه تو مثل خورشید می درخشی. اگرچه گذر کرده ای از سیاره کیوان در بلند مرتبه هی. کیوان سیاره زحله. و اون آلل کواکب به سیاره خیلی دوره. درست شد چون هرچی از خورشید دور باشه، هرچی فاصله زیاد باشه بگو. نور کم میشه دیگه مرانیتش کمتره. لذا میگه تو مثل خورشید داری میره گرچه جایگاه تو جایگاه بگیر سیاره زهله آه یا نه اگه تو قرار بود جلو باشی به جایگاه خورشید باشی ببین دیگه چی میشد یا اصلا خورشیدم بیشتر نور میدادی تو در جایگاه زحل نشسته ای ولی مثل خورشید نورانی هست. و این جاوزت کیوانفی فی ول مکنه خب دومی رو ببین الان عدات تشبیه چی بود کاف بود و قال آخر شاهر دیگری گفته اینه البته چیز قشنگی نیست که آدم کتاب درسی می نویسه. بگه گفته است دیگری خب بگه ات پیدا کن جونت در بیاد ببین کی بوده گفته بعد هم یه ترجمه برای اون بنویس حالا یه موقع من دارم مثلا صحبت میکنم به قول مروف اون, اون اسلوب خطابیه میگم شاهری چنین گفت نمیدارم الان کیه اون شاهر ولی یه موقع هست دارم بینویسم توی مقال شاهری دیگر چه بین بگرد بیده کل بنویسم دیگری این بوده بشار ابن برد بوده یا فلان بوده حالا وقال آخر انتکل لیس باز انتم مبتدا کلهس خبرشه لیس مشابه اون به کاف ادات کشه انتا شجاعت و اقدام شجاعت یعنی جرعت اقدام یعنی یورش کردن مقدمه حمله کرد. تو در حملهوری و جرأت مثل شیر هستی اللیس. اینجا الان در دو چیز تشبیه کرده به شیر یکی در حمله بر شدن، اقدام، یکی در جرأت بودن و نترس بودن شجاعت. اونجا یدونه بود زیاد؟ انتک لیس شجاعت ول ون... اقدام. معلوم؟ و سیف، سیف اطلب جای لیسه. و تو مثل شمشیر هستی. قرار خطوب فی گراء الخطوب قراه مستر قارعه، یعنی در هم کوبید خطوب جمع خطبه یعنی مصیبت بدبختی مشکلات میگه تو مثل شمشیر هستی میبری و میری در در هم کوبیدن مشکلات و بدبختی ها تو مثل شمشیر هستی چیزی جلو دارد نیست مثل شمشیر مشکلات رو در هم میکوبی و میباردی و میری خب ببین یه مشبه داره انتر به دو چیز تشبیهش کرده یک بار به شنگ شیر در حمله ور بودن و شجا بودن یک بار به شمشیر در درهم کوبیدن مشکلات گفتیم میتونه مشبه مشبه اونه متعدد باشه هر دو یا یکی الان نگاه کنید وقتی که تشبیهش میکرده به لیس لیس کاف ادات تشبیه هست وقتی گفته و شمشیر اینجا عدات تشبیح نیست چون سیف عط شده به جای لیس دیگه نگاه کاف هست یعنی تو همچو شمشیری و همچو در معنا هست تو شمشیری در درهم کوبیدن مشکلات همه میفهمن یعنی مثل شمشیر. چون اون شمشیری که نیست که فیقرائل خطوب قراغ الخطوب پایین میگه مسارعت و شدائد درگیر شدن با سختی ها و تقلب و علیه و چیره شدن برون قراغ یعنی مسارعت و شدائد سراغ قراغ یعنی کشتی گرفتن درگیر شدن خطوب یعنی شدائد و مشکلات خب؟ این مثال با اون مثال قبلی یه ذره فرق داشت چی بود؟ اینکه یه مشبه به دوتا مشبه اون بهتش بشد و یکی هم که عدات تشبیه در مورد سیف ملحوظه ولی در مورد لیس ملفوظ هست سه نگاه سر. و قال آخر با شاعر دیگری گفته که اخلاقک اخلاق رکر بی لطفه ها و فیها ها نسیم و سباه عدادت شده که انه. اسمش میشه مشبه اخلاق خبرش میشه مشبهانده نسیم و سبا. اون فی لطفها ها و رقتن فی میشه ود نگاه کنید الان میتونست بگه اخلاق و که لطف ها و رقعتنفی ها که نصیب سبا با یا اسم بیاره مثل نصیب سبا ولی خوب با که هم دو وجه شبه هم دوتاست ها اخلاق لکیفه نرمه رقتن ها خیلی خوشه رقیقه دراشت نیست تو اخلاق خوب و دلنشینی داری. در خوب و دلنشین بودن اخلاق تو مثل نسیم صبحگاهیه ببین نسیم باده است که صبح از شرق میبسید میگن اگه کسی چرت داشته باشه بیاد این نسیم به صورتش بخوره صبحگاهیه چرتش میپره روح افزاست شاد کننده است اخلاق اون رو در روحفظایی و شاد کنندگی و سرمستی آورندگی تشبیح کرده به نسیم سب کن. فی لطفه ها و لقیقت شد نسیم و سبا قان آخر شاید دیگری گفت که نما اینجا هم که ان ولی یه ما چسبید. این ما رو توی ادبیات تو بش میگن مایه کافه این مای کافه چیکار میکنه فقط عملش عملشو میگیره دیگه عمل نمیکنه ولی از نظر تشبیهی هیچ فرقی با یعنی الان اون بالایی رو اگه به جای کهن اخلاقه کم گفت کهن میگفت اخلاق و که بی لطفها و رقت بیان اخلاق و کم شد مبتدا نسیم مصباح گفت کهن نما ادابتش و عمل دیگه نمیکنه اینجا اگه ما رو برداره به جایی که بگه که الماءو الماؤ که میگه چی؟ که انل ما چه فرقی نداره این رو یاد گرفتی؟ این ما رو کافته جلو عمله میگیره ولی یه کاری به کار تشبیهی که بحث بلاغتی ماست نداره که انما الماء الفلام داره یه جوی آبی رو نشون میداده که میرفته. یه جوی آبی تعریف یه علف لام، علف لام تعریف اشاره به یه جوی آبی داره که نشون داده یه الفلام عهد تعریف. یعنی این آب این جوی آب این جوی آب فی صفائن در پاکیزگی این وجه شبه. این جوی آب در پاکیزگی در زلال بودن م? فی صفائن مقد جرا این وابا حالی است و حالان که جاری شده یعنی این جوی آب در حالی که جریان داره در پاکیزگی زائب و لجنی. زائب یعنی مذاب ما میگیم آب شده نغره رو آب میکنن ما میگیم مذاب زائب ذوب شده زائب و لجین لجین است این از نوع اضافه صفت به موصوفه یعنی علوجینو زائد نقره مزاب نقره مذاب چون نقره میگن اضافه صفت به موصوفه یعنی علوجین المذاب فا نگاه کنید میگه این جوی آب که داره میره چون اگه آب وایسه اونطور نیست وقتی که داره حرکت میکنه اینطور پله پله پله دیدی جوب حرکت میکنه روش شیار شیار ایجاد میشه میره پاکیزه هست نگه مثل نغرهیه که مضاب کنه مثلا این توی این کوره ها جاهایی که نقره آب میکنن نقره رو آب میکنن توی شیاری میریزن این همینطور که میره سفید مثل مایع حرکت که میکنه این نقره پله, پله پله پله میره تا میره سبه خب نغره سفید خیلی هم درخشنده است توی این شیاره که میره آب رو در پاکیزگی و روان بودن و سفید بودن و صفا داشتن ها در حال حرکت تشبیه کرده به ای که مزادو به در حرکت بکن. خب این سفیدی و پاکیزگی در نغره خیلیه مثل محتابی که روشنه می درخش این نغرهی حرکت بکنه وچه شبح چیه فی سفاره خب حالا ان این چارتون فهمیدید مباحثش هم من گفتم که ان و که ما رو یه دکته کوچولو میگم خارج از مباحث این درس ماست ولی خب ما باید هی رو تکمیل کنیم که شما از نظر علمی و از نظر فهم سطحتون بالاتر از سطح کتاب باشین یعنی بتونید وقتی بالای کتاب میخواید بشید لایده مبحث مقابل بشید مسلط به من نگاه کنید گاهی اوقات مشبه و مشبه به مطلقند چی گفتیم؟ گاهی مشبه و مشبه هم به مطلقند مطلق؟ یعنی قید نداره میگیم زید کل اصد انتا کشمس کش تو مثل خورشیدی. نه و قید زدیم نگفتیم مثلا خورشید صبحگاهی. قورشید دم زوار. نه تو را قید زدین تو در لباس حکومتی مثلا قید نزدیم نه تو مثل قورشید انت کلهیس تو رو گفتیم مثل شیری نه تو را قید زدیم نه شیر درست شد اینا مطلقند گاهی اوقات مشبه یا مشطون یا هر دو مقیدند مقیدن یعنی گفتیم مشبه با این قید مشبه به با این قید تشبیه کردیم الان نگاه کن الماء و قد جرا و حالان که داره تو جوب راه میره آب راکت باشه نه ما نمیکنیم این آب رو در راکت بودنش نه این آب روان این روان بودن قیدشه این آب روان مثل نقره است، اما به شرطی که مذاب باش بلن نقره هم اگر مثلا انگشتر من الان نقره هست آب روان که مثلا انگشتر من نیست بله اگر دو چی نقره رو ریختی تو کوره آب کردی مذاب بعد تو یه دونه شیاری اینا حرکتش دادی تا برسه به غالب تو این شیاره که حرکت میکنه اون آب روان توی جوب مثل این آب به غید روان بودن در جوب مثل بگید نقر از به غیر مذاب بودن و حرکت به سوی خانه می اینجا غید مشخص شده من ما غیت یم مطلق نبیم مثل اینکه بگیم زید در خونه خودشون مثل شیر می در ج خب این زید مطلق نقدیم مثل شیر بودیم تو خونه پیش ننش مثل شیر می غید زیم گاهی اوقات مشبه و مشبعند مطلقاً، گاهی اوقات مقیداً. اونجا باید باقے۔ اینجا میگیم این آب روان در جوی مثل نغره آب شده و مذاب است به طرف قالب میره در درخشندگی و پاتیزگی. گاهی اوقات مطلقند، مشبع و مشبعند، گاهی مقید. خب، درست دیدید. حالا نگاه کنید پای میگه الوجین الفزت حالا ما این درست و خوندیم. رو خوندیم مثال هم خوندیم تطبیق دادیم الان میخواهد بحث رو بخونیم همون رو با تکرارش الوحث فی البیت الول عرف شاعر در بیت اول شاعر ما شناخته ان ممدوحهو وذیع الوجه متلعله و التلقل. شاعر ما شناخته که او که بهش میگه انتا این وزیع الوچه چهره نورانی داره. مطلعه و تلعه. تلعه و چهره او خیلی درخشانی. این درخشانی چهره رو در او دیده. فعراد انیعتی له به مسیله. خواسته برای او یه مانند بیاره. اما مانندی که تق وافیه حاضه مانندی که این صفت توش قویتر باشه مشب آمده باشه یشته یه چیزی پیدا کنه که صفت درخشندگی توش خیلی قوی باشه خب چی را پیدا کرده خورشید که مردم به خورشید تشمیل میکنه در درخشندگی خب اون صفت کدومه که میخواد وحیه از زیاغ و اشراق اشراق تفسیر زیاغ عبارت است از درخشندگی این صفت توش باشه فلم یه جد از هر اشهر اکمل منشنم بهتر از خورشید پیدا نگد فزاها و به یعنی شبه هست زاها یو زاهی یعنی شبه هست و شبه بها. پس تشبیه کرده ممیدونش رو به خورشید ولی بیان المزاهات لبیان بیان تشبیه برای این تشبیه رو بفهمونه اتابل کاف کاف رو هم به عنوان عدد تشبیه اما وفل بیت سانی در بیت دوم و شاعر و ممدوه او متصفن به وصفه شاعر ممدوح خودش رو دیده دو تا وصف داره یکیش یورش بردن و شجاعت یکیش هم در هم همکوبنده مشکلات بودن برای جرعت و شجاعت و یورش بردنش شیرو آورده که بالاتره برای درهم کوبیدن او از حیثیت انداختن مشکلات شمشیر آورد مثل بیت سامی از شاعر و دیده شاعر ممدوح او متصفا به وصفی هما الشجاعت و یکیش شجاعت و اقدام تو این صفت گرچه خودش دو تا صفت هست. شجاعت و اقدام برای این یه مشبهان به پیدا کرد. شمشیر برای مسارعت و و شیر برای شجاعت و اقدام. همه از شجاعت و, و مسارعت و شدائد یعنی قرار خود بود. فبحث لهو بحثه این جستجو کرد. جستجو کرده برای مشبر خودش ام نزیره که دوتا نظیر پیدا کنید. این کل من هما اهدا حاتین صفتین که در هر کدومش یکی از این دو تا صفت به طور قوی باشه اهدا هاتین صفتین فزاها فضاها بلا اسد پس تشبیه کرده مشبه خودش رو بشیر تشبیه کرده اون رو بشیر فضاها ها بلعصد فل اولا یعنی فیل صفت اولا و به سه فستانیته یعنی به و به یه و به یه به عدات هیال هیل بعد این مزاهات و این مشابهت رو فهمونده با یه عداتی که عبارت است از کاف با کاف این رو فهمونده کو، گیدیم که راحت ما تونستیم مبحث رو بفهم وفل بیت سالس اما در بیت سوام وجد شاعر رو اخلاق صدیقهی دمیستم اخلاق دوستشون دمیست نرم لطیفتن خوش پیدا کرد ترتاح و لحن نفسو که ترتاح و آرامش پیدا میکنید به خاطر این اخلاق نفس انسان اخلاقش نرم و خوشه آدم روحش در کنار و آرامش پیدا میترد فعنه لحنانیتی لها به نظیر پس گشته براشی نظیر پیدا کنه تتجلا فیه حاضر صفت و ترمان که این صفت درش هم آشکار باشه این روح افزایی آرامش دهندگی شاداب کنندگی درش زیاد باشه و هم واضح باشه فتجل لافیه آزیسته و, و بطم فراه انا نسیم از سباه کذاره نسیم صوبگاهی اینطوری همه میگن نسیم صوبگاهی روحفظاه شادی بخش از خمودگی در میاره کذاره که فعقد المعامل فراه انا نسیم از سباه کذاره نسیم صوبگاهی این چنینه فعقد المماسلت بین, بین این دوتا مماسلت ایجاد کرده و بیانه ها زیل مماسل بله کنه این مماسلت رو همراهی رو با حرفی نشون داده که کنه است خب این هم دیدیم وفل بیت رابه اما در بیت چهارم عمل اشتای رو ان... حالا انیجدن مسیلم للماء صافی شاعر قصد کرده یه مانم پیدا کنه برای اون آب روانی که پاکیزه و صاف بوده. هیچگونه کدورتی نداشته. گلالوت نبوده. صاف و روان. زلال. برای این آب زلال روان خواسته مانند پیدا کنی که تقوا وافیه صفت و صفا که توشی این صفت پاکیزگی و صفا قوی باشه. درخشندگی توش زیاد باشه. فرا لفظ زت ضائبتتا ت تجللافی ها حاض حصفف وبددید ا رو من دیدم آب که میکنن اون شیار بخواد بره همچین عین این جوری که آب توش حرکت میکنه روا همون مثل محتابی می درک رو میره. ک اوها ها فقطقدر بین درست شد فرا ان از زائبت ها حاضر صفت و اندلفظ زت ضائبتتا ها حاض و و بیند ها زهل مماسلت بلهرف که اند یعنی گفته بلهرف که اند در سوی که اند بود شون گفتیم اون ما چیه؟ بگیر مای کافز جلوه عمل رو میگیره اما نسبت به تشبیه یه چیزی نه ما تشبیه عدات تشبیه میخوایم ادات تشبیه که عمل بکند یا عمل نکند اون بحث نهرست دقت کنید یه نکته دیگه باز من بگم که دوباره این تیکر رو بخونم. ما ما گایی اوقات مشبه و مشبه و بهمون به همون هر دوتا حسی یه چیز حسی رو تشبیه میکنیم به یه چیز حسی دیگه. حسی یعنی اونی که با حواس پنجگان میتونیم بفهمیم حواس پنجگان همون. با چشمون میبینیم. یا با دستمون لمس میکنیم یا با زبانمون میچشیم ها؟ یا با گوشمون میشنویم. حسی اونی که با حواست پنجگانه ده گاهی اوقات محسوس به محسوس تشبیه میشه مثل انتک الشمس شمس خب انتک این آقار داریم میبینیم خوشیدم میبینیم, میبینیم. خوشیدم. درست شد مثل انتک از انتک مثل علماه الجاری کل این زائد این آگه روان مثل نقره مزاد اما گاهی اوقات گاهی اوقات نه یه چیزی که معقوله محسوس نیست معنویه اینو تشبیه به محسوس میکنیم یعنی میتونیم بگیم این بحث بحثو اینطوری بگیم که طرف این تشبیر مشبه هم مشبه هم به گاهی هر دو محسوس هم. گاهی ممکنه هر دو معنوی باشن غیر محسوس باشن گاهی یکی محسوسه که منه الان توی کل اخلاق که اخلاق اونو که ما نمیبینیم خودشو میبینیم اخلاق فهمیدنیه مثل اینکه که میگیم صداقت این آقا مثل روز روشن می صداقت این ها رو تشمی کردیم به روز روشن صداقت یه صفتی در اون می رحمیم, احساس میکنیم اون رو نه چشیمش نه لمسش میکنیم نه میبینیمش ها فقطش میبینیم میگه که می ان عل اخلاق و لطفها و رقت و ها نسیم و سبا مثلا میگه علم نور دانایی نور است عل علم که نور به هدایت حالا اینجا ما علم دانستن دانشمند بودن تشبیه کردیم به نور به, هم به حسی گمراهی مثل تاریکیست است. شد معلوم شده پس گاهی اوقات مشبه و مشبه به از محسوسات گاهی اوقات از معلویاتن معقولاتن اونهایی رو که ما با حس درکشون نمی کنیم که خواستم نکته هایی رو بگیم که حالا بعدها اینها رو هی تکرار میکنیم و نیازشون هم داریم. نگاه کنید ببینید چی میگه میگه که فعنته ترا تو میبینید كل بیتن في كل بيت من أبيات ال الأربعات هم در صد تکراری داریم مثلا تکرار می در شما ببینید در هر بیتی از ابیات چهارگانه ان شيءا اینکه یک چیز جعل مثیل شیئا قرار داده شده مانند یه چیز دیگه یه مشبه به یه مشبهه تشبیه شده فی صفته مشترکته بینهما در یه صفت، یه بچه شبهایی که مشترک کرد ال میتونه بچه با م متعدد باشه میتونه مشب با مشب با اون باشه هم متعدد داشته حداقلنشین که یه مشب داریم یه مشب به اون به داریم یه بچه شود واند الذي در حاضل ماصله داتونه کاف اوکن و دیدی چیزی که دلالت برین هم شکلی میکنه عداتتی است که وارد است از کاف و یا کند نه عداتش این, این داری تو میبین. و هاذا ما يوسم ما بتشبیح. اگر این طور چیزی داشتیم و اینطور طور به قول خودمون وارد داشتیم ایشون میان تشبیه. فقط رهیت و باستو دیدی ان لابد بد من ارکان دیدی که ناچار است برای تشبیه باشه چهار تا رکن من ارکان اربعه 4 روش باعث تشبیه اشی والذي یراد تشبیه و یوسم ما یکی اون چیزی که مقصش میست که تشببیش کنیم توش می مشبه و شیء ال الذيظی رو شب به بهی و یص معل مشب دوم چیزی که ما میخوایم به اون تشبیهر کنیم چیزی رو که میان مشب به هم به و حزانه یسممایان طرف تشببیر می روه روش میان طرف این یه خصوصیت هم داشتن که من گفتم هیچ موقع بگید نمیشه در وارد نباشند تو تشببی حتما هست. اگر هم حذف شده باشن در تقدیر میگیره در تقدیر با فرینه ممکنه تو عبارت حذف شده باشه در تقدیر و صفات مشترک تو بینه طرفین و یکم بچشدایی که مشترک بین طرفین و تو سم ما بچشد شب میگن بچشد و گفتیم که در تشبیه‌های و معمولی که الان ما داریم میخونیم 95 درصد تشبیه‌های اینطوریه درست شد این بچشد شبه در مشبه هم به اقوا، ازهر، اشهر، اکمل است نسبت به مشبه نم گفت و با انتکون حاضر صفت و فلمشبه بهی اقوا و اشهر ببینی اینجا میگه اقوا و اشهر اون گفت اقوا و ازهر یه جای دیگه میگه اقوا و اکمل اینا اصطلاحات خودشون اقوا و اشهر و اکمل و ازهر منها از این صفت فلمشبه کماره هی تفل بعد چی داریم صبح من ادات و تشبیح ادات و رو میبینیم که هیا و که و نهوه همون کاف از و که و ماننده حالا پایین نگاه کنیم همونیه که من گفتم خاشیه یک میگه ادات و تشبیح اما اسم ادات و, و تشبیح گای اسمه درست شد ادات و تشبیح ما اسم نهو شبه زیدان شب خلق عزت. مصر زیدون مثل و لعصد فیلجان مماسل زیدون مماسل و و ما رادفها و هر چیزی که مترادفی مثلا مثل مشابه محاکی و ما رادفها ها هر چیزی که مترادفی این کلمات دوش و ما فیلو یا عداد تشبیح فیله مثل یشبه ها یشبه ها یا ماصد و یا ماصد و اسه، یزار او منای یا شبهست، یزار او صدد یهاکی یوهاکی اسد نه همش به معنای مانند می باشد یا شبه اینا فعلا و اما ما حرفون و اول کارف نکرد. تا اینجا مخصول این تیشر باز ما گفتیم که گفتیم طرفین تشبیه حتما باید باشند. ولی اگر عدات تشبیه و وصل شبه در عبارت نبود ملحوز است اما بگید ملفوظ نیست مقدر هم نیست ملحوز مد نظری میگه و لابد نفی کل تشبیحین من وجود طرفی در هر تشبیه باید حضور داشته باشه طرفی وجود داشته باشه و قد و قد بسر فیلموزداره یه چی؟ گاهی و قد یکونو التشبیحو و قد یکونو المشبهو محضوفه گاهی و قد مشبه محضوفه حالا گاهی و قد, مشبه گاه و قد مشبه مشبهان به محضوف باشه مقید اینه مثلا من بگم من کل حسد چه کسی مثل شیره؟ شما بگید زیدان یعنی زیدان کل حسد, اینجا کل حسد خبر هست شد. در هر حال گاهی و قد یکی از این طرفین تو عبارت نیست اونجا باید تقدیر گرفت و قد یکونا المشبهو محذوف لن علم به علم, علم یعنی باو به خاطری که میدونیم اونا یعنی لن غرینه به خاطر وجود برینه لن علم به یعنی ل وجود ل غرینه بلکه نهو یقد درو این درسته که اینجا نیست ولی در اعراب تقدیر میگیریم و میگن المقدرو چل منظور انگار هست یا و وفل و حزت تبدی رو و این تقدیر گرفتن ما به مسابت وجوده مساحی یعنی منزله به منزلت وجوده، مساوی با این که انگار هست من گفتم که اصطلاحشون که میگن مووت در رو کهکن و حاضت تقدیر به مسابت وجوده کم اعضا سوئیل کرد عمه این سوال از تو بشه خود این قرین است. کم و اعضا همونطور که اگر از شما سوال بشه کیف فعلی یا مثلا علی برادر شماست حالش خوب نبوده خوب حالا یه نفری سوال میکنه از حالش که مریض بوده یه علی آقای کوچولو؟ از شما سوال میکنه کیف فعلی علی آقا چطوره کی فعلی یا شما میگید که زهرت زابلته زهره یعنی شکوفه زابله یعنی پژمرده میگید مثل شکوفه پژمرده است در بیحالی در افتادگی ودشلاشون ذکر نکرده با باش اون ملحوظه اما نهگفته مثل شکوفه از خالی گفته مثل شکوفه پژمرده است این پژمردگی ریدش چون او آقا مریض بوده خب؟ حالا اینجا این که از خبر مبتدای محضوفه دیگه یعنی چی بگید یعنی علیان که از زهرته خمود درست اون خمود اون در پشمردگی، اون با قول خودمون در بیحالی اون بچه شبهه اون ملحوظه. اما مشبه که علیان یا هوه هستش اون مقدره که از زهرت جارو مجرور خبری شه و قولت که از زهرت زابلت و این که از زهرت خبرون لمبتده این محزوفه مبتده های محزوفه که به قرینه حذف شده و تقدیر و یا علیون که از زهرت زابلت اونجا عدد تشبیه هم حذف کرده درست گفته هوه از زهرت از زابلت و. ولی بهتر رو بنویسه که بدتقدیر و حوه که از زهرت زابلته. درسته که اینطور هم میشه ولی خب همونو بیاره دیگه در تقدیر حوه است که از زهرت از زابلت یعنی که از زهرت جار و متعلق با آمین مقدر خبره مبتداش علیگون یا حوه هست شد حالا آیا ممکن هستش که وچه شبه که هست شده بود عدات تشبیه میتونی بگیم شد از میکنیم بگیم حو اما اینجا مثالی که زده بود کافو داره پس بنابراین اینجا باید بگه هوک از زهرت زابله اما یادتون باشه گفتیم وچ شبه و عدات تشبیه این دوتا حس میشن نیستن نمیان اگر نیومدن ملحوزند ملحوز یعنی چی؟ یعنی مد نظر تو معنا مد نظرن. اما بگی تقدیر گرفته نمیشه اگر باشند بهشون میگیم ملفوظ نباشند بهشون میگیم ملحوظ معج و ادات تشبیه مد نظر از نظر معناوی تعبیره اما مشبه و مشبهه اگه باشند بهشون میگیم مذکور اگر نباشند بهشون میگیم مقدر مشبه و مشبهه هست میگیم چی مذکورند اگر یکشون به غرینه حذف شد بهش میگیم چیه؟ مقدره ولی مقدره کل مذکوره اما عداد تشبیر و وز شبه اگه باشه بهش میگیم ملفوظ، تلفظ شده نباشه بش. نباشه بهش میگیم ملحوز یعنی مد نظر ولی تقدیر گرفته نمیشه نگاه کنید وقت قد بر سر فعل مزاره یعنی گاه وقت یو هزف و وز و وقت تو هزف و عداد گای اوقات وجه شبه هست میشه گای اوقات عدات تشبیه هست میشه نرست این دوتا کما سیروبین و لکفی مابد همونطور که اینو بعدا برای توضیح میدیم من البته توضیح دادم گفتم اگر حض شدن اینها میشن ملحوز. اما دیگه مقدر نیستند یا ملحوزند یا ملحوز اما مشبه و مشبهانده یا مذکورند یا مقدر تمام شد دیدید. خیلی سخت نبود و دیدید. حالا نموزج رو نگاه کنید در نموزج همین مباحثو رو بحث میکنید اما مثال تغییر میکنه بعد از نموزج هم تمرینات تو تمرینات یه سری مثال های دیگر میاد مثال های دیگری گفته میشه درست شد الان مثلا تو تمرین نگاه کنید تمرین مثلا چهارشون انناسو یعنی مردمان همه مردم من شما دیگری انناس که اسنان المشت مثل دندانه های شونه هستند این شونه که سرتون رو با شونه میکنید این دندانه دندانه دندانه داره. خصوصیت این دندانه ها چیه؟ اگر صد تا دندانه داره این شونه 20 سانته، خب اون اولی از این سمت راست تا اون آخری از سمت چپ این دندانه ها همه با هم مساویه اینها همه با هم مساویه شونه خصوصیتش اینه اگر یه دندونش بلند باشه یکیش کوتاه باشه، یکی نصف بالا، پایین با غیره که شونه نمیشه کرد که فراخ میشه. پس مردم مثل دندانه های شانه هستند در چه چیز بگید؟ در استوااق در یکسانی در مساویه هم بودن. الان اناس مشبه اسنار مشت مشبهون بهه کاف عدد تشبوی فل استوا بگید و درست شد؟ همش هم شد یا مثلا تمرین یکشو نگاه کن تمرین. انتک البحر فی سماهت یعنی بزرگواری چود بخشش میگه تو مثل دریا هستی در بخشش دریا هر چقدر ازش میگیرن دور رو گوهر سید میکنن دریا میبخشد دریای کرب میگه انتا کلبه فسماهت فسماه هم وچه برسته چیزی نداری اما دوباره میگه انت کش شمسه و شمسه اینجا انتا تشبیش شده به شمس برای مورد دوان مشبهان به دوان یه چیز به دو چیز اما تو مثل است، در در چیز؟ اولووند در بلند بولن مرتبگی کی دستش به خورشید میرسه هیچ کس تو در بلند مرتبه نمیگه در درخشش اون گفت انتک از شمس به این میگه انتک از شمس بگید فل اولو در بلند مرتبگی تو مثل خورشید است دستش به خورشید نمیرسه تو هم انقدر بولن مرتبه کسی به نمیریه اولو باز دوباره تشبیه کرده ول بدره. تو یه چیز به سه چیز تش یکی بدر در کرم. یکی شمس در بلندی جایگاه و دیگری بدر ماه شب چهارده تو مثل ماه شب چهارده هست فلش در درخشش شما نگاه میکنید تو ماه شب چهارده ها همه جا تاریکه پسترت بلندگو ماه تو آسمان میدهش تو مثل ماه هستی در درخشش یه چیز به سه چیز یه نکته ای هم که باز توی این مثالی که خوندم براتون نظر دارم اینه که ببینید وحش شبه همیشه به شکل جار و مجرور نیست مثلا فه سماحته فه اونجا داشتیم فه شجاعته ولی اقدامه بگه هر کسی جار و مجرور همش اینطوریه که هم فی سفاین نه گاهی و قادم مثلا به شکل تمیزه و شمس اولووند میتونستن بگه فل اولو به شکل تمیز آمده ما وچه شبه رو به شکل جار و مجدور باشه یاد بگیریم یا به شکل تمیز باشه یاد بگیریم اینا نیست وچه شبه صفت مشترکی بین این دوتا که در مشبهان به قوی ظاهرتر ظاهرتره مشهورتر و ممکنه که به شکل جار و مجبور بیاد به شکل ظرف بیاد به شکل تمیز بیاد ما به عنوان مشترک میشه نا درست شو؟ این هم یه مثال حالا مثال دومش رو نگاه کنیم میگه عل و رو، یعنی عمر ما یه عمری که ما داریم خب یکی سی سال چه سال پنجا سال هشت سال عل عمر رو مثل و ضعیفه این مثال واسه چی گفتم بلکه اعداد تشمیج اینجا مثل میتونست بگه کس از زیفه بوده مثل زیف این عمر ما مثل میهمان است مثل میهمان خب عمر را تشبیه کردیم عمری که ما داریم یه عمری که میکنیم مثل یه میهمانه. خب در چه چیز عمر رو تشبیه کرده به میهمان در اینکه میهمان بگی دائمی نیست دیگه میهمان میاد حالا یه ماه هم بمونه خلاصه میره اگه بمونه میشه موقعیم یه عمرم تموم میشه حالا کم زیاد یکی میبینی مثل میهوان یکی اومده یه روز میمونه یکی دو روز میمونه یکی سه روز میمونه. یک میمونه یکی یه ماه میمونه خلاصه میلیم علا رو مثل الزیف بعد گفته او کتتیف این کتتیف این دفعه با کاف تشبیه کرد باز عمر تایف؟ مثل تیف میمون تایف خواب خوشه چون مثلا خوابیدی و یه از این تایف دیدی خوابیدی یه قد نگاه میکنی او برنده شدی اومدن گفتن توی این بانشونوی برنده شدی یه خونه بددادن یه ماشین بددادن بعد از اون اسم اسمت اومد که لیسانس و دکترها رو بود شدی اینا رو همه رو میبینی تو خواهی تیفه یه حولم جمعه یک چیست این تایف خواب خواه میگه عمر مثل خواب خوش میده اولی که تشبیهش کرده به زیف باز یه ذره براش بقول خودمون اقامت در نظر گرفته بیشتر ولی وقتی تشبیه به تیف کرده دیگه خیلی کم الان این وچه شده بریم اصلا به شیطون جمله اومده لیسن لهو اقامت اصلا برای او اقامت و دوامی بگید نیست دوام نداره بقا نداره مثل میهمان در رفتن مثل تیف است خواب خوش است در رفتن یپر آدم اون لیس له شد پس بنابراین این حالا نگاه کنید نموزج کتاب رو میگه که قال المعری باز آقای ابالعلای معری این شاعر نابینای ما اینطور گفته رب لیل چه بسا شبی کمن نهو از صبح گویا شب نبود که صبح بود صبح مظهر درخشندگی شب مظهر تاریخی میگه من شبی داشتم مثل صبح شب تو شعره غزلی دو جوره یکی شب خوش است و شب مثال است و فلان میگن این مثل روز روشن بود از شب نبود روشن و میگن مثل برغم گذشت. این شب تو اصطلاح غزلی اونها شب وسال هم روشن تاریک نیست هم زود گذره میگه تا مثل برق گذشت. چشم اونو واکرین شب تموم شد یکی هم شب فراه شب فراه هم تاریکه هم وحشتناکه آه؟ و همین که میگه هر چقدر چشم رو هم گذشتیم تموم نمیشد که مثل اینکه اینکه با قسمی که الا ایها اللیلو طویل الانجلی به صبح الا ایها اللیلو طویل الانجلی به صبح و من اصباحو من کنم این شب بلد چون قهم غصه داره و فراغ و غیره این شب طولانی میشه و تاریکه از هر طرف نگاه میکنه جای دل خوشی نداره اما تو شب وصل همه رو خوشی میبینه انگار از نان روزه پس گفت چی؟ گفت رو بلقیده. چه بس شبی که اندهو از صبح. گویا که صبح روشن بود. در روشنی مثل صبح بود. فرحوست در زیبایی. روز صبح زیباست دیگه مظهر زیباییه. میگه این شب تاریک. شب و مثل صبح روشن بود و زیبا. فلحسن. و این کانه اسودت تیلسانی. اگرچه این شب از تیلسان تیلسان یعنی شنل اینی که روی دوش میندازن شنل تیلسان بهش میگن بعد میگه اگرچه این شب یه شنل سیاه به کرده رنگش سیاه بود ولی خودش سفید بود مثل چی میبونه؟ مثل یه کسی که لباس زیرش سفید باشه لباس سفید سرکاسری پوشیده یک شنل سیاه یک عبای سیاه انداخته روش. این تصادتش خیلی زیباترش میکنه میگه این شب در درون خودش روشن و سفید بود زیبا بود یک شنل سیاه انداخته بود یه رنگ سیاه این رنگ سیاه تازه زیبایی اونو بیشتر کرده و این گاله اصفادت تیلسانی اگرچه شنل سیاه بدن داشت. پس این شب مثل روز بود در زیبایی مثل اینکه یک کسی لباس سفید زیبایی پوشیده یک شنل سیاهی هم روی دوش انداخته خب الان اینجا لیل اون ضمیر های کهنه‌و مشبهه برمیگرده به لیل از صبح مشبه هم به خبری که آمد فنحسن ما چه شده که انه هم اداتو تشبیه نبا کنید شما توی خودمون تا جدولی که درست کردیم یه از زمیر فی که انهو علا ال آیدو ال اللیله مشبه از صبحو مشبه هم بید ال مشبه هم بید ال اداتو که انه فلحوس اون ال خوص زیبایی بچه شد همه هر کانش نست درست شد رب لیله که شب و تشبیه کرده به صبح هر دوش هم محصوص رو این مدن میبینه شب میبینید. میبینید شد مثال بعدی رو ببینید این خیلی جالبه قبلالای مرلی نابیناست در چهارسالگیم سالگی نابینا شده سه چهارسالگی سالگی گرفته نابینا شده اما انگرزی با این شعر رو بیان کردی که آدم مثلا میمانند که شاید چه دادی اصلا خودش که از نواقف پایین نگاه یک میگه از تایی نسان واسه پوشش بلندی، یلبسوه و الخواستو من الولما علمای خواست اون ویجه ها شنل دیگه میداختن شنل والا اون کسانی بوده که جایگاهی داشتن و قومن لباس العجم عجم شنل به داشتند. جمعهو تیالس و تیالس هم جمعشو اینجا نگاه کنید ما یک ستاره داریم به اسم ستاره سهیل که الانم هم میگم میگم مثل ستاره سهیل میمونه درست شو؟ این ستاره سهیل دو تا خصوصیت داریم کبگوش کن. یه خصوصیتش اینه که رنگش سرخابیه رنگ سرخابی داره. حالا این به خاطر اون خاکیه که اون ستاره داره که نور خورشیدی که بهش میتابه این رنگ دیده میشه مثل که شما یه صفحه سرخابی رنگ داشته باشید نور معتابی سفید روش میتابونید اون اینطوری دیده میشه خب رنگش سرخابیه نه این در اون زمانی که این ستاره سوهی طول رو میکنه که فصلی از سال طول می‌کنه میکنه همیشه نیست این ستاره سوهی در حال لرزش اینطوری تکون تکون مخورد خصوصیت دوبانی حالا این خاطر اینه که بین ما و اون توده هوا جابجا میشه شما اونو در حال لرزش می‌بینید ولی اون نمی لرزه مثل که شما اینجای بخاری یا آتشی روشن کردید پشت این بخاری آتش که گرما داره میره بالا یه چراغی باشه چون اون لامپ رو شکل تکن تکن رو میبینید دیده درست شد. پس ستاره سهل دو خصوصیت داره چیه یک رنگش سرخاویه دو در حال لرزشه دو خصوصیتش حالا اگه به ما میگفتن این ستاره سوهل رو حالا بولا اون که ما دیده باشیم اولالا که اصلا نامیناس اینهای فهمیده میگفتن تشبیه کنید واقعا چی چی می می می کنید. به چی چی میاد میتونستی میستاری رو تشبیه کنید اما ببینیدشون به چی تشبیه چه میگه <تصفيق> سوهیلون که وجنت الهب وجنه یعنی گونه خد گونه میگه سوهیل مثل گونه معشوق است. هب یعنی حبیب یعنی محبوب یعنی معشوب میگه گونه معشوره چطور سرخابی رنگه سهيل مثل گونه محبوبه ماست فلوم در رنگش سهیل در رنگ مثل گونه محبوبه ماست اون این اینم هم همین خب. و قلب المحب و این سهیل قلب از جای وجنه و این سهيل مثل قلب محب است محب منظور خودش یعنی عاشق مثل قلب من عاشق است دل خرفوان در لرزش قلب من چطور در تبو تاب است نسبت به این عشق و در لرزش در لرزش اشتداد سهيل مثل قلب من عاشق و در رنگش مثل گونه مغممی و غزلی این گشنگی درش بیگه سوهیلون که وجنت به و قلب الهب فل خفقانی در استراب و نزد میگه سوهیل با این نگاه کنید کوکبون زو اوهو یوز رب ستاره است که رنگش یوز و یعنی یمیلو و تمایل دارد به سرخی بردم سرخانی رنگه فهتزاز و استرابه در تکن خوردن و لرزش احتزاز است الحب یعنی الهبیب یعنی المحبوب یعنی المعشوق و الخفقان یعنی ازکراب و لرزش سوهیل مثل گونه معشوق ماست در رنگش و مثل قلب من عاشق است در لرزشش نگاه کنید ببین سوهیل اینجا دو تشبیه شد یکی سوهی مشبر تو دو جاست یکی به وجنت الهب گونه محفوظ یکی قلب المحف تو اولی ال... عداد الکاف هست ملفوظه تو دومی الکاف نوشته مزمرتن چی مقدرتن مقدرتن غلط دیگه کاف رو ما گفتیم چیه بگید ملحوظه اینجا کاف تقدیر نیست که اینجا قلب عطف به جای وجنه هست. و کاف در مد نظره یعنی مثل قلب منعاشم است القاف ملحوزتن و وحش شبه در اولی اللون و سرخی است و در دومی الخفقان و اسکران خوب مباحث تشبیح رو بیان کردم حالا جلسه بعدمون این شالله اقسام تشبیح رو میخونیم این مباحث است که ربطی به زبان عربی نداره شما هر قدوم رو یاد بگیرید توی فارسی خودمون هم همین مباحث و گرامه ها هست اینجا از موارد بیانه برای اینکه فهم بیشتری نسبت به موضوع داشته باشید اینها رو بهتر مطالعه کنید جمع بندی کنید چیزی نیست ما کل درسی رو که اینجا بیان کردیم اگه جمعش بکنید بیش از بقول خودمون یک صفحه نخواهد شد و نکاتی را هم که ما در کانالش براتون ذکر کردیم بعد تکرار تکرار تکرار حالا درس بعد تشویر رو تقسیم میکنید شما این تشویر که ما گفتیم رو یاد میگیرید تو درس بعد که تقسیم میکنیم همین رو تقسیم کنیم اگر این که شما لنگ بزنید روزی ما چی رو تقسیم کنیم پس بنابر این جزئیات رو ان نگاه میکنید و یاد میگیرید هر آدم بیشتر یاد بگیرید بهتر فهمتون نسبت به و ارتباط با مردم خواهد شد الله تعالی موفق و معید باشید تا جلسه بعدمون که بتونیم در خدمت شما باشیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.